اللهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله سيدنا على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين واللهم اجعلنا عبادك ما شئنا الله لا يجزينا شرفا الحمد لله هر شد در کصوب فوی فعلی ما در بحث حوجیت ضرواع بحث به شک های دیگری که اصداح مح شد که با اون صورت خعام حرف داشت. در بحث مطالات بیشتری اعسات و حرییده و میدان استعمال اعزات حریه و تکی بودن معمود، نسبت و با آزار و قریه، بحث از نهبی بود با در کسوب اصول متاخر ما هست که در امتداعن ساق ماله به اخباری ها به هست دیگه اصولی مباحث به شکل دیگری مزهد کردن نصد ساق ماله به بحث خطاب مشافهه این احتمال داد که خطاب در حق یعنی زهور در حق خصوص مشافه یا مشافه هست باشه به خاطر قراره نیجه اخباری ها هم که اصلا بکیه یک یعنی کتاب رو زیر سآل بردن و ربونت از رواده کتاب بعد ما هم ازده از اصولی از تفصیل های مقددی که از گذر مرمون شیخ چندید رو در اینجا نه در هنگوست که در کتاب استاد دو سه تا تفصیل شما زدن یه شده یه شما تردن یه که همون هم که تفسیر باید میشین من قصده خامو و من درمیقصده خامو که توضیحاتش بودش یه نیازی رو تکرار نده دیوز ما یه توضیحی بذین خودمون قیلت این, این که آیان در وقت اصولی مطرح کردند، توضیحی رو که صورت سر رو پیدا شدن بحث ها چه بوده هر که در نصف به کتاب خب بردن اون مشکلاتی که در تمسک با آیات کتابی در تفکرات شیعی وجود داشت احتمال هم یکی از اسواقش احتمال رو من به طور یعنیم مثلا آیه مبرکه که منبال مثال بیدون هست هم زن هنزم ایرس در آرانده ایرس مرد خب این در اصول همون بحث محروف رو باز کرد آیا کتاب به خبرواهه تخصیص می کنید اطوالی ها به جای این بحث این بحث خودشان هست بیشتر مطلعه کردن که از کتاب عمومان نداره به جایی که بگیم تخصیص برشتر به جایی که اصلا ما عام کتابی نداریم اطلاق کتابی نداریم به جایی که بگیم بگیم حالا شما ممکن بود بیان بگنه آخو شا سعیده زدین میخواد این مثلا رقایت درسندش شما تو بگن آن به کتابی ما نداریم اطلاع نداریم اصولا زواهر کتاب دل قانونی و دلحاظ تمثب در فرق قابل تمثب نیستن این یه ترگی بود که آن اطلاع خب تم از اینکتبه این تر الان هم و از اون مشکلاتی که الان مثلاح کتاب و راغب هم هندی میگه حالا مثلا فرض می گیره اطلاق به واره کی دادن شم میگه او اوه میگه دادن اطلاق نظر به شامل زمین بشه یا نشه میگه تعبیرش چی؟ اصل اطلاق مونچه اطلاق خطاب شد. اصل اطلاق و زیر سوال برده. بعدش شما در بحث خودی از کتاب توضیحش رو خواین درست. البته اکثر در این بحث علمی واقعی دقیقی نیست. که باید در خصوصاً دنیای اسلام در دنیای معارف دینی حالا کار ما خصوص که این محل بررسی تم... برام در کیفیت توسل با آیات خدا توی که چون بعدها یک نوع تمسخ های مختلف مثلا طرز ما الان مشهور بین اهل مثل اسلام شیع رسانی اگر بسم الله برش گفت بر، نگفت حیوان رو نمیخورن ظاهر آیم و بلکم همین ولاتر قلوم مالا میرد تر اسم الله علی مره زاهرشم میتوند که و خورده نشه بس خود شافی خالده که خورده میشه و به همین آیین تحقیقه کرد. به خود همین آیه. ولا تعرض از طرف شوافه استفاده شده من خود به, به خود شافی استفاده نمی ده. تو موقعی هم و لا تعرض رو از امام موه شوافه. ولا تعرض رو الله به خود همین آیه تناسب شده که مخصوص به تبیین می ظاهره ای که مخصوص به تبیین نمی خود ولا که خیلی واضحه. معذاله به همین آیه باز تناسب شده در این مخصوص به اگر یادتون باشه به حاضر اینکه واقع رو رواما خالیه گرفتن داره شرک که نمیخوام آرده این یه بحث انصافا دقیقه یعنی این بحث ماید کاملا به نظر ما به صورت اینی و کخت مطرد میشه در فقه اسلامی رو کلی چون کتاب نیدی که بلادشتان مصدر اول تشریف بلادشتان نه تشریف بس تمام معارض دینی مصدر از قرآن اینکه جوی بحث نیست. این برای کلام در کیفیت میشه و کیفیت استضحال یا بقول آرون استضحال یا برهان این که انسان بخواد از موارد که استفاده یک اطلاح بکنه یک اموم بکنه این یه مسئله بود که در ما باید روش کار میشه و طبیعتاً ما همه کارها همون دو طرف افراد تطریف رو داریم یعنی کسانی داری که به هیچ ورش میگن به زواهر کتاب مراجعه نکنید مثل اخوار خودم و کسانی مثل احرسانت این رفت با آیات تمسک ولی که هیچ رفتی به حضورت ندارید مشکل کاره هیچون چون توفید این آمن تمسک با آیاتی که هیچ رفتی مصد احمل کار مومن این تمکاره پاسده هم لایسته هم ابن حضر به این تماظر کنیم این کافر اصلا دیه ندار خب او چه رفت به دیه دارد؟ کجایی داهای صدر آید؟ کجا نادره به دیه؟ اون سوال دیه شوش مفرم نگیم ابن حضر کسیم کافر مطلقا دیه ندارد شهر کتاب شده برده کسیم هیچون چی دیه دارد حالا مشغول به ما یک زمان بیاده یک دواز اما از خیلی قلیم داریم تصاویم توی اهلسانت یادیم نصر از ما میشترگنگی بیادم نصر گفتن، صورت گفتن، یک هکشنون، یک روان، یک روان گفتن الاخر من باید بحث بس مثل هر اصلا دیه نیست. تواصل به این آیات میکنه اطلا من کار ما اونه که من خارم. این میشه که به نظر ما تو وقت سایه نه ما فکری ولی واقعی هم بشه ما حد حدودی برای این محضور و ها قرار دیدیم نه اونطور یه حساب کتاب و نه اینطور از این از حد حده این اون بحث بخش نوبوم این در مسادر حد در مسادر حدیثی ما تا مدت به احادیث که تمثب می که مثلا سراحتاً دیگه در موارد سکرسی احادیث رو می اوندن به استدلاب استدلابی ما ها احتجاج می کنند به روایی ها ترمیم می اولی کتاب ما توی این جهد کتاب تحضیل شیخ توسیه حضرت صلی اللہ وسلم که مناسب مرتضی داره در کتاب انتصال و غیره بسید چون بیشتر دنبال اجماع اجماعه رو به وایت خیلی توجه نداره بیشتر اون اعصاب اصاب کار میکنه اما شیخ سلسی در تحضیر چون تحضیر شرح محنه شیخ محیده ایشون به خاطر شرح محنه شیخ مفید، فتاقای شیخ مفید رو میاره و شرح میده به تمسا که برگاه بسید بعدها این کار کاملا دیدر اصال ما جام میبته مثل علام و مثل محبه محبت در مقطع، محبتی که گروه کامل فخیسته داری ندارد. حالا می‌داره، اما محقق دارد. حالا من کامل نیستم تا سکنه فخیسته داریش، کامل نیسته فخیسته داریش، کامله زخواره زیما. اما اونجایی که ازت میکنه مثل مختلف مثل پسکله مثل منتها، در اونها فخش کامل می‌تذاتره فخ ندست. بر دست لال می‌سرد. و این کوچیان می‌تونی بیای از کلمه شوهر زخواره از خدیم از زمانی که اصولاً رواییات در بین اصحاب ما پسرک میشه آنباً امدالاً این مدتی چند تا مسئله اساسی هماشه توجه نشده هم من ارزمی کنم کافی و فقی گذینشی هم. اشتباه نشه کافی و فحی. این دوتا گذینشی هم کافی تقریبا میشه خود که چهره بردازه کافی در قوم نشه شده بسی این های تفکرش تفکر ما بعدها دارشده مکتب بردار میشنسیم اما فقیه مکتب مقتب قوم بود و ازم که اونجایی که من خوردم و که کلاس ما کامل نیست ما بعد فقیه صاحب نظری در مقتب قوم نمیشنسیم یعنی آقاین شهری که ما از مکتب داریم فقیه که سال 375 وقتیشونه اشتادیه سال 3 شادی. نظام ها مختبه خورمون با ستا چهار ست نساب میکنی الا بعد از مرحوم ادباوه تقیی از خاندان ادباوه ادباوه ادیادی هستن شبه مرحوم 20 نفر از خاندان ادباوه که بردال آمودن پیش شهر قیسی در اون درجه ای که اینها رو صاحب مختب بدونی نمیدونی در اون حده صاحب مختبی نیست ف تحضیح و استفسار هر نیستن نه تحضیح گذیر نه استفسار گذیر مراد ما از دوشینه هرسی در تحضیح و استفسار ارده بیلی منامیست که به اون فتحا میده و قبول داریم این, این کتب هر رو چون حتی زیرم اشیرم در از سنگیم میتازی نگاه میتنم و مواقع انترنت رو که مثلا مقایسه ایتران برین تحضیب و کافی خب برای در جمعه اونها از من تو ما بود، جا نیفتاده باشه تحضیب و استفسار هیچ شروعشون گذینشی نیست. و اینی که میگنه خطوبه هر بری پیش موها تحضیب و استفسار نه زابطه اصطلاح مثلا مثل سریع بخاری خارج هم نه تحضیب و نه استفسار لذا این نکتران جا چنده نبودم بیا توان کردی شد درقیقا کتبه هر برگودن به لحاظ شغرت انتصابشون به معلفه یعنی ما به این اصحاب ما راسته این چهار کتبه ها خوغلاده مشغوله دنبال سند و اجازه و من همین تا دیگه اینگاه می کنیم در این زبخانه عزیز مرشی عبدالله نفسه نمیم هفت سال هشتاد تا تا تا همین کتابه تحبیر و خبیر و برگ خیلی قسم کرده کردن نصف سننگاری که خیلی نفیسه فر از توی کتابه بحث این بود که این کتب اربعه صفر کنید اینا اومدن کتب اربعه خاصه با بخاری مقایسه این اشتباهه بخاری هم گزینشیه خود سری بخاری سری مسلم اونا گزینشیان یعنی انتخاب کردن اختیار کردن کافی هم گزینشیه فقی هم همینطور این چوری توی ما شاید جایی شده کتب اربعه این توضیح بدم چون از دارم سنوی ها میشین نرسن اشیدن جا کنم مثلا تحضیح و استثار مثل بخاری نه نه تحضیح و نه استثار تحضیح شرح کتاب مغنیه بوده بعد یک مقدری رو در شرح عبارت مغنعه میگه ربایت معارضه میاره و همه هم مثلا معارضه و خلاه بعدا یه حمله میکنه خیلی از این حمله همتیشون در شده و تحضیح میکنه خودشه رو مجرده که یک نحری بلاله همه همه تبرعی یکی جوری فقط تعارض برداشه که در حد این این این کالا فتوان برو بده یه شرفی داره هم ایشان بعد از نیکی کتابی مقدر می باشن مثلا فرصه کتاب سهارت پنج پسته بعد از هر پستی هم ایشون خودش مستردکاتی عمونده اینم بعد اضافه کرده که در آخر تحضیل تو اول مشیخه میگه هدف من این بوده که استفس خدایشون تصویب میکنن میگه من بازم احادیث اضافه کردم تا استفسار بشه این گذینشی نیست استفسار از یه هر که نرخشد بگه این استلاحاً گذینشی نیست اینشون میخواسته و ما سوزی هم دادیم کم بازیم خواهد بشن کلام شیخ رو نفهمیم یه چی چون الان استفسار نگردیشون کنیشون درجل از اینکه خدای نکه خلاف واقعه ما الان در کافی حدیث داریم در کتاب ایشان نیست در فقیه الا ماشاءالله حدیث داریم در کتاب ایشان نیست در مسادر دیگه ما حتی بعد از عطب خکی با خبر نیست که حتی خود شیف بوده بعدها از او حدیث نمی شده که الان در تحضیح نیست الاخره من دیگه بعد این بحثی بشم دست دودانه زمینه ی فکری رو تاریخی و عرض بعد بعدها اصحاب ما در مقام استد مثلا تحصیل مرحومه علامه قدس الله آنسه توی مختلف اونجایی که من شخصا مراجعه کردم به متن تحضیب مراجعه کرده از کافی هم نمیاره فقیه هم میاره اما از کافی نمیاره یعنی نتیجهش این نگاهی این حدیث رو از تحضیب میاره یکه صریفه همون حدیث در کافی و سن صریعه هست او نمیاره اینجوری ما مقایزه کردیم موتون رو مقایزه کردیم مطلب بعد حالا چه آسانی داره در فرمنده میخوام وارث بشم که طولانی این ادامه پیدا کرد اعلام کردم دیروز اولین کسی که در miras های ما و حدیثی ما اولین کسی که این قواعد تقسیم حدیث رو علنای پیاده کرد به حدیث اینم علامه قبل از الله نداری این اولین بار با طریق صدوق و فلان صحیحون طریق صدوق و فلان ضعیفوا قبل از علامه کسی این کار رو ندرده کسی که این کار کرده علامه هست در صرف هم اولیتی سی که پیاده کرده علامه است ما قبل از علامه ندردیم علامه هم عوائل قبل هشتونه هفت و تاریخ در ذهن تون بیشت. حالا احادیثی که در فرسون قرن چهارون بوده فقیح یا کافی که اول چهارونه با و ق پنجم این احمازیسی که در اون وقت بوده اینا در قرن هشتم شروع کردن به جای سعه ای یاه یعنی ما یه فاصله زمانی داریم و خب بعد از الانج این مسئله یا جا جا میفته اون چیزی که برای اساب تازیدی پیدا میکنه تا اونجا که ما میدونیم باززن دف های ریچمن میدونن میخواب کل مییم اولین کسانی که این مناباب شاست شروع هم مون مفه قدس الله آنسته در مجموع الفایض از برها این حدیث اینجا شیخ این جوز اونجا دیگه این گفته، بفته اونجا دیگه این اشارات اولیه مال ایشانه حالا با قدس دردری که برمزنه و دو شایدی ایشان مرموم صاحب مدارد و صاحب معالد تا حدیه هر, هر کدوم یه نحری این بیدن روش استاد رو توضیح میدن و صاحب معالد با که کتابون منتقل شما تقریبا اولین که چیز حتی از استادش محقق قردوی هم دهتره مقایسه مطمئن و اسانی در روایات رو میکنه مثلا یه حدیث در کافی اینجوره در تحضیب اینجوره خیلا با هم مقایسه میکنه چه قرن دهان و یازدهان خب این گیره خیلی گیره در اثر این مقایسه ها نفس ها قیدا شد تالو مقایسه نبود یه مردم تو تحضیب آمده یه مردم همون سند تو کافی آمده گاهی بین سنده هاشون اختلاف هست تو سندی این داره تو سنده اون نداره تو مردم ها داره این میخواب رشته ای کار داره خصوصا دوی تحضیب شیخ اون جزء اونجور خطوبر برد ارز اونجا که من میبنم بازم آنی مراجعه که هم من فقط نفت اولین کسی که متفکر شد که احادیس در کتاب تحزیل با مثل کافی یا حتی ممکنه با فقی اختلاف بگران میکنه یا سنرن یا مثلا این مظهوم شهید در درایش خب طبعا بعد یه نظر روینا کار شدن پا یه سلسل کار رو تیدیوز شروع کردیم یه مقدار کار شروع شد این منشه این شد چیزن خب ما مشکلات حدیثی زیاد کردیم نظام مثل مس مردم اساب قوانین یالا این معرفش من گفتن بقیه خود تو تصور بسازی که آقای یوتیپی همین چی چی و فیزیکو مثل میسنال مساب قوانین میفرمازه که خب ما چکار بوده این حدیث در اینجا با این متن نظر اونجا با اون متن دیگه هست در اینجا این طوری داره که اون طوره. در کافی همین سند آمده این متن اینجوری در تحریر این خیلی داره در کافی نظاریا برع این منشأ ای این شو که مثل صاحب قوانی این مطلب رو مطرح مطلع... بعدش از اون بعد خب این مطلب مسلم بودیه این مقایسه‌ای نمی‌خواد پس اون شافیه العلوم داش ماله کتاب موطع داش احمد کتاب داشت میگه بعدش هر کردن احمد کتاب داشت اینا یک مشکل دیگر گفتن روایت تحریبه به نهر سماعی بوده ادعا کردن سدول روایات در مدینه ثبت روایات در کوفه است و دور رواید از ایمه علیمان سلام در مدینه بوده اما سبت و زبت و کتاب و تدویم و تعریفش در گفت دقیق کردیم این یواشه هاش این مطلب پیدا شد خب اینجا این کلمه افتاده اونجا راوی کم کرده شاهد غمینه بوده این شبهه محروفی رو که محرف کردن به این صورت هست محروف استاد خودیم یک تحلیل که اساس علم و در کجا جایی میشین این بحث نبود بحث که این صورت اجمالی بود این روایات به نحو مشافه صادر شده یک به نحو تحلیف نبوده دو ممکن از قرائه بین امام و این اماما مخاطر باشه این قلاته محرم اون قرائه خفیق علینا اگه این عبارات شیخو مجموعه عبارت محقق قومیز بخونید که یه داره من این خلاصه و خلاصه با شما گفتم که ابهام درداشته میشه تقفل ایشون بگه اثبات نشده این روایت از قبیل تعلیف و باشه یه کلام امام صادق بازواره پرمده این آماله در کنفه هست و تصادیف عجیب و روزگاه نکنه نه خود صادق نه نوشن زراره هم نوشنه خیلی حالت زراره پیش حضرت بوده میره شگاه بایی اما نمشته ها چونه هم نکرده این هم دو تو مشکلی بود که فیاد مشکلی بود که اولی سما بود دوباری جمع با سما ما خود زراره در کتاب نداره شاگرده هایی داره مثل همیستیشون کتاب داره مثل عمره نوزین داره مثل فرزان جمیده ندراج داره مثل فرزان عبداللهم ندراج داره خودش فرزان و لذا الان میشه در یک مسئله دو تا سه نفر از زرانه هم من مطمئن امام هم خودش داره از این منشت چی شد خوب تعمال فرمانی چی شد چیه ممکن است این زواهر برای ما حجت نباشه از اون خب ما راهینا لما چا بزرکنه ایشون میگه ما به همین رواد دو جور میکنم نه این که ایشون میگه آلا که راهیناده پسینا ترشتو کنه طرز محقق قومی در تون روشن بشه که لا میشونه چیه ایشان میگه چون به به نحر شفاهی بوده و از همایی بوده احتماعا قراری در درقام تخاصل وجود بفته حالا ماها میگیم مثلا فران اجتماعی مثلا فهم اجتماعی مثلا تمدن ها عرب شده فرهنگ ها بسته با اینجوری میگیم حالا ایشان گفته قرینه خاصه یا اینواته این, این قرینه بر اثر زبطی که قرد شده خط یعنی از اما ها اما ما در مقام استنباه به همه هم مراجعه میکنیم خیلی از در همه همه همه اینها یعنی این خودجیت این ها یعنی ایشون اصلا عرض کردم ما منحیص المجموع از روایات استفاده میکنیم یک نقطه ایشون میگه جایی که ما منحیص المجموع استفاده میکنیم دلالت اسمشون ما یک آیه قرآن رو میگیریم با رباریات تنمیم میکنیم با اجماع اصحاب و تلقی و قواعد یه حکم رو استنتاج میکنیم این اسمش دلالت نیست این استفاده منحیت و مجموعه دلالت ها اصلا مجموعه این اسمش دلالت بگیرد این دلالت لحظیست باشنه شد یه گرش شوال آیه قرآن اما این دلالت نیست این یه دو ما به اینها رجوع میکنیم نه که ایشون میگه حالا که این کده بهش میکنیم فرقش میکنیم وکه رجوع اماوی و عنوان حجیت خبر نیست و حجیت زن نیست خلاصی حضوریشون ایشون میگه چونه اگر بنابرای شد این رواد رجوع نکنیم این شریعت از بینیم خب شب کنیم این چیزتو نیمینه خب روشن شد این کلام محقق قومی که مقصود بل افهان ما اولش رو گفتیم چون آخریش هستی هستی گیری خودیشان برد کنی ارز پس محروم محقق قومی اولو تا ایشان قومی هم نیستن رشی اصلا اصلا اصلا سکیم محروم محقق قومی قدس الله نفسه محروم محقق قومی قدس الله نفسه خلاصه حرفش روشنشون چون شن روی بایاتی که الان به ما رسیده به نهر مشاطهه بوده به نهر خطاب بوده نبوده. این احتمال داره قرائنی بین متکلل و مخاطر موجود بوده اون قرائن الان به ما نرکیده این ربایت هم الان در شما موجود ده اینکه ما موجود نیست ما به اینها مراجعه میکنیم فقر هم از همین در میاریم. از مجموعه اینها با هم دیگه فقر و استنتاج میکنیم لکن این نه به عنوان این که خبر واحد سبه معروف امزال اقلا ما ماهو خبر ثقه نه به ماهو زن, نه زن, خاص. زن نه همونی که ما اصطلاحاً بشهیم انصداد ما از راه انصداد وارد میشیم چون راهی نداریم راهی غیر نداریم باید به زن تعبض پیدا کنیم. زنی هم که الان به اصطلاح ما ها بشهده زن خاص نیست نه اینکه که این زن پیش و با هم خبر واقع خبر سقه را هم حجر حالا فلسون این سیری اغلا رو قبول بکنیم که خبر سقه پیش و اغلا حجر ما به ا چرا؟ چون این مبنیست ولی که اون متن کامل ما رسیده باشه با قراره احتمال خفاقراره هست با احتمال خفاقراره هست نمیتونی باید پس این زن خاص نیست ندیبه چیه؟ این زن عامه این تحلیل روشن شد ما با این تحلیل اصلا ننوشتم من به نظر خودم میاد که چطور میشه مثلا از زمان صدور روایات به دست ما رسیده از زمان کل این مباحث به این ای توربین اصحاب ما در ثاغر زمانه یه دفعه از آن دها هم شروع کردن به ما وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم از قرن مهمترین نقطه ای که شد این که اصحاب ما مثل مرقوم محفی اردبیلی مثل شیدسانی به این نقطه افتادن، رو مقایسه کردن می‌گن که این کم داره که که که که که که که رو کم کلی طبیعی زیاد داره، این که سرش یکیه، اون یکی چالش اسم یه روایتی هست که در باب نظر احرام قبل میگاه خود شیخ تلسی نهارو کرده تو کتاب شیخ تلسی نامونه انحمال عمل حللی من زمین این جنوب از کرکی با حاضر اصنات طریقه حمال دو تا جنوب هم مادر می ایسا هم مادر می اصمان حللی این تا قرم نو مثلا محقه کرک ده محقه صاب معالم در همین منتقا اومده گفت این حمال صدویی کیه اگه این حمال در مدرسه نیسا باشه اگه حمال در عثمان باشه قاضی نمیگه یعنی دقت بکنید یک مساله طبقا در رجای جزء بدیهی یا سرچانه لكن مرحوم محقق کرد که در چه اشتباهی واقع شد این مرجو حسین سعید حمال علوی گفت این سرینم سرین به حالا فکر نکرد که این حماد اگر این آقا باشه از بعدیش نرمون میکنه اگر اون آقا باشه قبلی جدیش میکنه با این بحث طبقات رو یه آقا ما تقریبا تو موادس جالیمون خیلی راحت راحت شده دیگه باکه شخصی که واقعا هم معقل این اشتباه نشه این پیس شخصیت ایشان نیست از تو بعض از علمانشیه محاسم اشان هردم علمانشیه ایشان واقعا مرد دقیق و نظری انصافا فوق‌العاده در سال و این جام ونقاصه شتاب موجزه اما بسیار مرد فوق‌العاده فرامعقبه کرد. غیر اجازه بزرگواری دیگری که داره سال تش ممکن. مثلا ایشان بدون اینکه طبقاتو در نظر بگیرن فرزنه حسین سعید بن حماد را مدح حالا یک نکته دیگه همین حدیث در یک دلیل یک تعقیب غیر از باب حج، باب ایمان نزول، آمده حماد انعلی به جای حلبی، اون ز علی که درست هم هم نگه حدیث نگه حلیب مثلا حلبی نیست <تصفيق> این مقایسه ها که شروع شد بعد این جور کار و... حالا این واقعا تحجیباور نیست که مثلا این روایت حلوی رو هم نه مرهوم کلیمی امروزه و نه مرهوم شیخ صدوق، یعنی همفلی کسی که امروزه مرهوم شیخ صدوی از را ساو از سعید امروزه باید این مجامع حدیثی ما اولین کسی که اوورده مرحوم شیخ توسیست ببینی شما زمان شیخ توسی قرم پنجم بگیرین تا معقل کرد که قرم جمع فتواه مشهور هم به همین بباید ایشون هم میگه سمیه بعد صاحب معادل میگه آقا این اگر حمادت معادل باشه این از حلبی نرم نمی اگر حمادت نو ایسا باشه نرم می از حسین سعیه رسو نرم نمی خب این مشکل طبقات الان تو بحثای ما بفتیم یه خیلی عادیه چطور یعنی تعجبابه برای شما که مثلا تنج خرم بذاره بعدم اون آقا پیدا که که آ این ای کتاب رو دیگر نیست اماده انه علیه این صحیحش هم همونه این علیه نوی همزه بطاینی مثلا این حلبی نیست کلا این نصفه غلط بوده اینجا نصفه غلط بوده. این صحیحش هم علیه این حدیث ضعیف به خاطر ضعف علی نقی. خب حدیثی بوده که کلینی نیاورده، مروئی شیخ صدور هم نیاورده. فخواچن در مغلیه شیخ مفتی نیامده. اول اینکه چیزی که این حدیث اول در مشایخ بعدی ما، و فخواش بوده شیخ طوسی. الان اصلاً فخو به همینه که احرام قبل از میقات میشه دورش شده. این الان به واسه یک اشاره عابر که این صحیح ضعیف در حالا بعد از هم چیز دیگه هم دارید این اصلش کیه که این بوده. این مقایسه ها که شد این خلل ها که پیدا شد این متاسفانه این مقایسه ها و این خلل ها در روایات ما دیر آمد دیر آمدن, دیر. آمدن یعنی چی گی روز огدتر manten ممکنه حتیان در میان علمای بحث کردن در ذر سال در مراجعات خودشون اما تو نوشته هایی که ما الان داریم نیست توی نوشته هایی که ما الان داریم این مراجعه ها این مقارنه ها الان در نوشته هایی از مثلا نه سمعه کارکی که سامالی نیکن برد کارکی خود شهادسانی کلیکشان برد کارکی کارکی نسیشی نسیشی لگرفت. خود آدال اسناد صاحیم او وارد گذاشت خورستن و هم مال العالمی. گذشت چه؟ سال بعدش تا اعمالو اند وقت نهایی استاد صاحیم سال بعد تا اعمالو این طبقه ما رو نشده اسم درسته اسمها که مفرده هست درسته باز برگی ها نموستن نا حالتی من حلبی باشه این از طبقه این بباید در این شبه حج مرمون سرگی بول تو کتاب و کرکراسه ایمان موضوع اونجا امرده انا علیه اصلا حلبی توش نیست کارو برد این کیوریه طبقه می‌خوره یا نمی‌خوره. دقت میخوری این مقایسه ها الان در زمان ما خب طاحت زیادی بهتر شده، این منشه این شد که اینا خیال بکنن که روایات ما کم و زیاد شده نقایصی پیدا کرده از بیروز بروز عبارت مرموم صاحب خدایه رو خوندن چند بار هم نرشده ایشان چند بار و جای متعددی هم داره مرموم رو اصدادم چونی کتاب حدیث در اولش کلام ساخره اقو رو اوبرده ایشان ایکی ای ای دو مرد اوبرده بیش از این اشان من خودم این عبارتی ایشون که میشواد تکرار میکنه اگر ما تو در حدیثم اند شیخ سلامتین از زیاده، اول نقیس از تحریف از تصیح سنغر او این چه عبارتی از این عبارات انصافا من استفاده وقت رو من اشتباه کردم چیزی ببینم به من یاداوی پنجره رو این ساعت الان استفاده حواسم پرت شد پس برابر این این مطلبی رو که ابتداعا از قرن دهم در بین هست مشهور ما شروع شد یکی شاجه به زواهر کتاب بود که بعد بحث میکنیم یکی هم راجه به روایه که این نتیجه نهاییش این شد کلمات اهل بید نسبت به مخاطبین و محصول به افهام حجز نسبت به ما نه این به شکل یک بحث اصولی در کلمات محقق قومی آمدی روچن شد که در حق حد... اون وقت از اون طرف ما مجبوریم به اینها مراجعه کنیم لیکن رجوع ما به اینها به زن خاصی نیست به زن آمون نه اینکه این زن به خصوص حجت ده نه اینکه خبر به ما خبر خبر به ما و زن رو. به خاطر اینکه زنه و ما راهی نداریم این حجت این بحث عصی رو هم در زواهر نسبت دادن پس دقت کنی من یه روز اج هم عرض کردم ما در زواهر دو بحث داریم یه بحث بود جت زواهر رو فهممق و فهم غلایی یه بحثی که با این روایت موجود چکار کنیم یا با آیاطپ قرآن مثل مثلا چ چ جو برداشت که ای وعلم میارش روکن. این تو باهمویه متاسفانه خررج اووارد استار هم خوندیم خود ایشا مثل این در مضال اوغال بحث عبد و مولا یک بحث این که ما میخواید از حجت بر خودمون اثبات یک بحث بحث این که ما به دنبال ظهور هستیم و ظهورات چه عمرو عرفی چه عمرو اوغلایی است این بحث دیگری است و اما بحثی که ما عرض می‌کنم اگر مشکلاتی سر روایات بخوا خب اون راه علمی داره یعنی این مطلبی که ایشون فرمودند به حساب معالم یا دیگران یا به به قولیشون در روایات بله این هست این ما خیلی راحت روایات رو بررسی می کنیم خیلی دقیق موجه رو بررسی میکنیم درسانیلش رو بررسی میکنیم تاریخ رو بررسی میکنیم مسادرش رو بررسی میکنیم رو مسادر کار میکنیم چون نشده این که موظم سام عاداره بفتی اätzen و موظم شهیدستانی پرمیلن من کلامان از کنین توجب نکردن شهی اصلا شهیستانه به این تندین هم گفته و نه سابه داره مثلا فرصه مقروم کلینی یک حدیث نرمه میکنه میبینن شیخ سوسی نرمه کرده هم از تندر محطان با شرمه خدا توکر رو نکردم مثلا شیخ کلینی اون حدیث رو از کتاب حسین سعید نرمه کرده شیخ سوسی اون حدیث رو از کتاب رو نوازه رو نرمه کرده واضحه محضرهای اون واضحه دو نسخه من، این دلالت بر کمال دقت و زرافه میشه که تویش بدردگزاره می‌دونم. دقت رو کرد، الان شما بساید این طوریه. یه متن از کافی میاد و بعد میگه واراوا مثل مسلول. من همیشه از کرد. که بود مسلولم گناه، و گناه تو خیرالب نمی‌دونم. متعارف به ماقا. من همیشه از کردم در کتاب بساید. 90 درصد موارد اینجوری مشلاو و, نحوه و مثل نه و اون مشی اون نیست 90 درصد نگیدم که متوجه‌ات این یعنی انصافا انسان این تسامح نیست اشیاء همیشه با وجود بعد از جوانان یعنی میان اینا علما هستن نه تسامح نکردن برخوردشون با حدیث برخورد فردی بوده یعنی بیشتر دنبال مضمون بودن بوده که من چند بار شاست رو همین جلس نه کردم صاحب و وسائل هناغین ارباب شکنه با وجوب کذا، با استحباب کذا خود آی بروجیدی یکی از دوائی آی بروجیدی که اشتاگرده ایشان رو مشین در بر تحریف جامعال احادیس این نقطه لطیفیست آی بروجیدی متنبه شدن ایشون فرح صاحب وسائل حدیث رو جمع کرده در عنوان فرق و استعمال فرقید ایشون به ذهنشون این بود که ما حدیث جمع کنیم بانوان حدیث نه شهره به درست میکنیم این دو داریه دیگه. بعد از بچه طلب ها بنده اول کار که این های تسامح, تسامح یه تسامح نیه دیگه بنایی بکیه یه انسان حدیث رو جمع میکنه بیشتر داریه نظر شفته درست میبین ای کودکیه اولشی بود نباید این کارو بکنه. حتی آنها بین آب‌بابیش نباید ما مثلاً آنها باب و ناقل لهی نباید بینیم. پس این باب اگر لهی و اکثریت اینطوری می‌شود. ما روابط رو دیدیم. این مرحله بعدی کار سواح است که استنباط می‌توند بگوته قبول بکر کدوم نکنه. ماشون آن وانه باب حضور ندیم. الان آنها بین آب‌باب و صلیح حضور و و است. ما شو عنابین عذاب تصویل از دیگه و نظابیشون سکتایش جامعه حادیث چیه گذاشت که ما باید حدیث و عذابیه حدیثی جمع بکنیم جامعه جنیسی به این مطلب مقدر صحیحه صحبا چون خود آقای برویزی من که سی سال مستقلن در برویجه که بودن اولین که منتشه بیرن برای تصدیه مرزیه خودشون روی حدیث حتی این آیه از شایدشون گوه دو بار ایشون کتاب اول تا, تا آخر نمیشن در روچه یک بار نمیشن، یه بار دیگر باز دو مطمئن همه رو بارسته. و خب این تکیب اصانید کافیشان چون چون بیدیم؟ تمام این اصانید سرکن کتب عربه و غیر عربه اصانیش استقرار شدن خب این کار پردی خود ایشان یعنی این کاری که ایشان با حدیث و با اسانید و با طبقات ایشون رو آش این مطلب مطلب درستیه این مطلب که ما بیاید مثلا حدیث رو یعنی دو راهیم بلکه چند تا راه میشه تصویر کن راه صحیح ترش به نظر ما در جامعه ها هم. این همینطوریه که ایشون ایش ایش ایش ایش ایش ایش تقرار کرده این ای اختصار دارم منظور بود این صحیح چند بحث نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه